سلام بر همراهان همیشگی کانال هزار افسان. جایی که قصه‌های کهن جانی دوباره می‌گیرند. امروز قسمت سوم داستان جذاب ملک جمشید رو براتون روایت میکنیم. پس اگر از این سبک داستان ها لذت میبرید همراه ما باشید تا انتهای داستان. در قسمت قبل تا اون جایی گفتیم که ملک جمشید به همراه رستمخان شبانه به غاری رفتن که سرهنگان و پهلمانان پادشاه دور هم جمع می شدند تا برای نجات ملک فریدون مشورت کنند و قرار بود که ملک جمشید داخل قار نره و پشت سنگی پنهان باشه. اما هنگامی که رستم خان رفت کمی بعد اونم رفت و اتفاقا بر جای سرکرده اونها که پهلوانی قوی تر از همه بود در صدر غار نشست و وقتی که قهرمان سپه سالار وارد شد و اونو دید که به جاش نشسته عصبانی شد و خواست که اونو با شمشیر بکشه اما ملک جمشید از اون تیزتر و زرنگتر بود و اونو شکست داد و همراه رستم خان اونجا رو ترک کردند. و بعد از اون قهرمان سپه سالار که خیلی هم عصبانی شده بود رو به بقیه کرد و گفت چه کسی این جوان رو به اینجا آورده و وقتی که گفتن رستم خان اون تصمیم گرفت که فردا دیامار از روزگار رستم خان در بیاره و اینک ادامه ماجرا. رستم خان و ملک جمشید بعد از خروج از غار یکسر به امارت خودشون رفتند و هنوز صبح نشده بود که به اونجا رسیدن و اون زمان رستم خان به ملک جمشید گفت ای فرزند خیلی بد شد که قهرمانو زدی و باعث خفت اون در میان بقیه شدی فردا صبح اون به پادشاه شکایت میکنه و پادشاه ما رو مقصر میدونه و دستور اعدام ما رو میده حالا من یه خواهش ازت دارم اونم اینه که هرچی میگم عمل کنی ملک جمشید گفت چیکار کنم؟ رستم خان گفت بیا و یه خورجین تل جواهر بردار و سوار اسب تند پایی بشو و منم همرات میام تا دروازه شهر رو در و برات باز میکنم و تو از شهر بیرون برو و جون خودتو نجات بده منم بر میگردم حالا اگه هم منو اعدام کنن مهم نیست من عمرمو کردم و جونم فدای یک مای تو باشه ملک جمشید که این حرف رو شنید گفت ای پدر من منو از مردن میترسونی؟ من از کشته شدن هیچ ترسی ندارم فردا هم خودم جواب دندون شکنی به پادشاه میدم هل قصه رستم خان هر چه گفت به جایی نرسید پس اونا تا اینکه صبح شد و اما صبح هنگامی که پادشاه بر تخت نشست وزیر و امیران همه اومدن قهرمان سپه سالار هم با سر و روی بسته از زخمی که ملک جمشید بر اون وارد کرده بود وارد شد. از رستم خان و جوانی که همراه اون بود و این بلا رو به سرش آورده بودن شکایت کرد و بقایه شب گذشته رو از اول تا آخر برای پادشاه گفت پادشاه از بقیه هم پرسید اونا هم گفتند قهرمان سپه سالار درست میگه و رستم خان خلاف گرده و این جوان غریب رو همراه خودش آورده که در قار بجای قهرمان سپه سالار نشسته. پادشاه عصبانی شد و فرمان داد که چند غلامی که مخصوص اجرای حکمای بدی بودن برند و رستم خان رو بیارد اونا هم رفتن و به در خانه رستم خان و گفتند که پادشاه اون رو طلبیده و هنگامی که رستم خان اون غلامای خاص رو دید رو به ملک جمشید کرد و گفت ای فرزند نمیدونم که قهرمان سپه سالار چی گفته که پادشاه این قلام ها رو به دنبال من فرستاده یقین دارم که منو میکشه. کشه هرچی بهت گفتم فرار کن از من قبول نکردی حالا میترسم تو رو هم بکشه ملک جمشید گفه ای پدر تو اینجا باش من خودم میرم جواب پادشاه رو میدم رستم خان گفه ای فرزن چون پادشاه منو خواسته باید خودم برم اما اگه کشته شدم تو تمام طلاب و جواهرات منو بردارو خیلی زود از این ولایت برو که اگه بمونی قهرمان تو رو میکشه اگر هم زنده برگشتم که کاری میکنم پادشاه تو رو بخواد و بهت خلعت بده و بعد هم با اون گلامان رفت. وقتی که با پادشاه روبرو شد و دید که قهرمان با صورت بسته و سیاه شده ایستاده به خدا توکل کرد و در برابر پادشاه تعظیم کرد و ایستاد. پادشاه بهش گفت ای رستم خان این چه بلاییه که بر سر قهرمان سپه سالار ما آوردی؟ رستم خان گفت من خلافی نکردم. پادشاه گفت شنیدم که جوونی رو نگه داشتی و در میان غار با خودت بردی و اون چنین خلافی رو کرده. رستم خان گفت از اونجایی که شما خیلی سفارش کرده بودید که اگه جوون قابلی وارد این شهر شد باش مهربونی کردید و پیش من بیاره تا اون رو خلعت بدم و تربیت کنم که شاید این گره رو باز کنه و با ملک فریدون رو نجات بده منم این جوون رو خیلی توانا و قابل دونستم به جای فرزند اونو نگه داشتم و ازش پرستاری کردم که تربیت بشه تا اونو خدمت شما بیارم الانم تو خونه منه پادشاه گفت چند نفر غلام برن و این جوون رو بیارن رستم خان گفت چون این جوون غریبه میترسم غلاما برند و حرف خلافی بزنن و اتفاق بدی بیفته تقاضا دارم خودمو بفرستید که برم اونو بیارم پادشاه قبول کرد و گفت باشه برو اونو بیار تا ببینیم چگونه جوان مردی رستم خان به سرعت رفت و وقایع را برای ملک جمشید تعریف کرد و گفت حالا پادشاه منتظرته. ملک جمشیدم خوشحال شد و همراه رستم خان به قصر رفتند. زمانی که ملک جمشید در برابر شاه قرار گرفت زمین رو بوسید و تعظیم کرد و گفت قربانتان شوم اون رو دولت پادشاه رو خلاق عالم زیاد کنه پادشاه نگاهی به اون کرد و دید عجب جوون بلند بالا خوش سیما و با اصالتیه و همچنین به محض نگاه کردن به اون مهر ملک جمشید به دلش نشست و اشاره کرد صندلی بیارن و گفت بشین ملک جمشید نیشست وزیر و همه امیران مات و مبهوت حسن جمال اون شده بودند و بعد از لحظه ای پادشاه گفت ای جوان تو از کجا هستی و اسمت چیه و دیشب چرا سپه سالار ما رو کتک زدی و پیش امیران بی روش کردی؟ ملک جمشید گفت چون خیلی بی بود. و سپه سالار پادشاه نباید که بی ادب باشه. من بهش سیلی زدم و ادبش کردم. پادشاه قاه قاه خندید و گفت ای جوون از کجا دونستی که سپه سالار ما بی ادبه ملک جمشیدم شروع کرد به تعریف کردن که دیروز من در بازار به همراه خان نشسته بودم. ناگهان صدای بروید بروید بلند شد. فکر کردم که پادشاهی که در شهر اومده و میخواد از بازار عبور کنه بلند شدم و با ادب استادم و دیدم که چهل نفر قلام همراه دختر زیبارویی که روی اسب نشسته بود اومدن. اون دختر لباسهای بسیار گرانبهایی بهتن به تن داشت و تاج و هر نشانی به سر داشت. سر و گردنش هم پر بود از جواهرات گرانبها و تا جایی هم که امکان داشت صورت و موهای خودش رو آرایش کرده بود اونا در شهر میگشتند و مردم هم همگی دختر رو تماشا میکردند اونم مردم رو تماشا میکرد. اون دختر به سمت رستم خان اومد و گفت هنوز یه مرد با غیرت پیدا نشده که درد ما رو دوا کنه رستم خان هم گفت انشالله پیدا میکنی و دختر گفت سعیتونو بکنید که شاید زودتر ما رو از این قصه رها کنید. بعدم رفت. من خیلی تعجب کردم. به رستم خان گفتم این کار خوبی نیست که دختر صاحب جمال این ولایت اینطوری خودش رو آرایش کنه و بدون هجاب و نقاب در میان مردم بچرخه و مردم اونو تماشا کنند. رستم خان هم گفت ای فرزند این دختر پادشاهزاده است و یه گرفتاری داره که هفته یک روز در شرط گردش میکنه تا شاید کسی پیدا بشه و راه درد اون گرفتاریش رو پیدا کنه. پرسیدم دردش چیه؟ رستم خان هم حکایت تلسم حمام بلور و ملک فریدون رو بیان کرد که به قدر سه هزار نفر جوان قوی و پهلوان در تلسم رفتن و برنگشتند. و من چون این صحبت و شنیدم التماس کردم که این تلسما به منم نشون بده. و رستم خان سه ساعت از شب گذشته بود که منو برداشت و برد و باغ و تلسم بلور رو به من نشون داد. خواستم که به میان باغ برم و ملک فریدون شما رو نجات بدم و این بدنامی رو از ملکه ی آفاق بردارم. اما رستم خان مانه شد و گفت فردا تو رو پیش پادشاه میبرم از اون اجازه بگیر و بعد به تلسم برو. منم قبول کردم. در حال برگشت بودیم که به در قاری رسیدیم. اونجا من جمعی رو دیدم که در بالای پوست شیر نشسته بودن. رستم خان به من گفت و برگرد و برو تا من بیام. بعد هم رفت در میان قار نشست. ولی من راه شهر رو بلد نبودم. گفتم بهتره که منم برم و توی قار یه گوشهی بشینم تا رستم خان که بلند شد با همدیگه برگردیم. داخل قار شدم و دیدم یه پوست خالیه، فکر کردم که این پوست صاحب نداره، پس رفتم بالای اون نشستم که ناگهان قهرمم سپه سالار وارد شد و تا منو دید شروع کرد به فوش دادن که چرا به جای من نشستی؟ منم گفتم ای پهلبون بون چون غریبم و نمی دونستم این پوست جای شماست. حالا هم مهمون تو هستم به قدر یک ساعت به من وقت بده. بعدم میرم و بیا جای خودت بشین. اما اون بعدش اومد و شروع کرد به فوش دادن منو و کشید که منو بکشه. منم حیفم اومد که سپه سالار پادشا اینطوری طوری بیتر بیتر بیت باشه. بنابراین سیلی محکمی به صورتش زدم که عدب و تربیت بشه. تا بعد از این با غریبان اینطوری رفتار نکنه. حالا هم اگه خلاف کردم، امر امر پادشاهه. پادشاه و تمام امیران از این صحبتهای ملک جمشید به خنده اما از اون طرف قهرمون سپه سالار به شدت عصبانی و ناراحت شد و رو به ملک جمشید کرد و گفت چه فایده که در حضور پادشاه هستیم وگرنه همین علام تو رو با این شمشیرم دو تیکه می کردم ملک جمشیدم با خون سردی گفت ای پهلمون حالا در حضور پادشاهه دیشب که در حضور پادشاه نبود می منو همونجا با شمشیر دو تیکه کنی؟ معلوم میشه که تازه سیلی دیشب هنوز تو رو ادب نکرده و دوباره باید ادب بشی. قهرمان خیلی بهش برخورد و از جاش بلند شد و دستش رو به قبضه شمشیرش گرفت و گفت کارت به جایی رسیده که به من طعن نمی‌زانی؟ در این زمان پادشاه عصبانی شد و گفت ای مرد پست و بی شرم این جوون داره راست میگه اگه تو غیرت داشتی و مرد بودی میخواستی همون دیشبونو دو تیکه کنی حالا در حضور من شمشیر میکشی غلامان بگیرید این پست بی غیرت رو غلام ها هم همه ریختند و دست و پای قهرمان رو بستند و پادشاه هم فرمان داد که جلاد بیاد و اونو اعدام کنه در این هنگام ملک جمشید برخاست و تعظیم کرد و گفت پادشاه ها قرمانتان گردم قهرمان قابل این نیست که اونو بکشید. تقاضا دارم که از تخصیلش بگذرین. پادشاه هم خیلی زود پذیرفت و فرمان داد تا قهرمان رو از اونجا بیرون ببرند. بعدم گفه جوون برای اینکه که رستمخان تو رو نگه داشته و حمایتت کرده اون رو سپه سالار خودم می کنم. بعد هم دستور داد تا خلعت گوهرنگار نگار سپه سالاری رو بر رستم خان انداختم. بعد هم پادشاه رو به مرک چمشید کرد و گفت جوان دیگو بدونم اسمت چیه و از مردم کجا هستی و شغلت چیه؟ ملک جمشید گفت قربانتان شوم اسمم که جمشیده و از مردم ولایت زیرباد هستم اما شغلی ندارم پدرم که مرد مادرم منو با سوزندوزی بزرگ کرد و وقتی مادرم مرد و دیدم کسی رو ندارم از ولایت زیرباد بیرون اومدم و چهل روز در بیابانها گرسنگی و تشنگی کشیدم تا وارد این ولایت شدم و رستم خان به من لطف کرد و حمایت هم کرد. پادشاه گفت خوب حالا چی تصمیمی داری؟ میخوای چی کار بکنی بعد از این؟ ملک جمشید گفت میخوام به تلسم حمام بلور برم و ملک فریدون رو نجات بدم تا دیگه ملکه ی آفاق بی نقاب و هجاب در کوچه و بازار شهر نچرخه. کادشاه گفت: ای جوون، امشب که باید مهمون من باشی و یکم با هم صحبت کنید و بعد هم در خلوت مجلس میهمانی بزرگی را انداختند و به شادی پرداختند. از اون طرف این خبر که سپه سالار ازل شده به امارت زنان حرم رسید و در اونجا میان کنیزان و زنان همهمه و قلقله ای افتاد و این درست زمانی بود که ماه عالمگیر دختر پادشاه از عشق ملک جمشید در اتاق خودش گریه و زاری می کرد و وقتی که صدای همهمه و قلقله رو در حرم شنید از کنیزهاش پرسید چی خبر شده این سر و صداها برای چیه پاسخ آوردن که ای ملکه یک جوان زیبارو و بلند بالایی پیدا شده که سیری محکمی بر گوش قهرمان سپه سالار زده و بعدم میخواد به تلسم حمام بلور بره و ملک فریدون رو نجات بده و امشبم پادشاه اون رو مهمون کرده و به خلبت خانه خودش آورده ماه آلمگیر تا این حرف شنید دلش فرو ریخت و رنگش پرید و پرسید شما ها از کجا این حرف رو میزنین؟ گفتند خاجه یاقوت این خبر آورده و گفت اونو بیارین پیش من وقتی خاج یاقوت اومد ازش سوال کرده این یاقوت این جوون کیه؟ چه است؟ اسمش چیه؟ خاجه هم گفت ملکه به سلامت باشن این جوون از مردم بلایت زیرباده اسمش هم جمشیده و تازه به ولایت ما اومده. رستم خان اون رو به فرزندین نگاه داشته و روز گذشته در بازار بوده و وقتی که شما با رستم خان صحبت می کرده این حرفای شما رو شنیده. ماجرا رو از رستم خان پرسیده و ماجرای ملک فریدون رو شنیده. بنابراین داوطلب شده که به تلسم هممام بلور بره و ملک فریدون رو نجات بده. و پادشاه هم در فلان خلوت اونو آورده و جشنی به پا کردند دختر این صحبت رو که شنید از شادی نزدیک بود که بیهوش بشه پرسید این جوون چه نشانه هایی داره خاجه نشونه های جپونو گفت و دختر فهمید که همون دلدارشه مقداری طلا به خاج داد و اونم رفت اما عشق در دلش قوغا به پا کرد اون همه کنیزهاشو مرخص کرد و گفت که سرده داره و میخواد که تنها باشه اونا هم همگی رفتند و در اتاق مشترکشون به شادی پرداختند از اون طرف ماه آلمگیر موهای خودش رو پریشان کرده بود و نالب و زاری و از درد عشقی که بهش مبتلا شده بود اشعار سوزناک می و گریه می کرد. دایه ماه عالمگیر اومد و دید که همه ی کنیزای ملکه در حال شادی و خوشحالی برای خودشون اونم از ملکه خبری نیست. پرسید چرا ملکه رو تنها گذاشتین؟ اونا هم گفتن که ملکه سردرد داشته و هممون هم رو مرخص کرده تا تنها باشه. دایه که زن سرد و گرم چشیده و جا افتادهی بود با خودش گفت عجب جمع یه چیزی شده. پس آرمارون به پشت در اتاق دختر رفت و گوش ایستاد. صدای گریه و ناله دختر رو شنید که از جیگرش می نالید و اشعار سوزناکی می خوند. دایه طاقت نیاورد و سرزده داخل اتاق شد. چشم دختر که به دایه افتاد رنگش پرید و نگران شد. دایه کنارش اومد و گفت این چی شده این چه وضعیتیه که داری؟ دختر از ترسش گفت دایه جان از اصری سردرد شدم. دایه خاتون گفت منو گول میزنی؟ حتما یک رازی داری و نیمیخوایی که به من بگی؟ من تو رو خوب میشناسم دوستم دارم رازت رو به من بگو شاید بتونم برات یه کاری بکنم تو رو به دین و آینت قسم میدم که درد تو به هم بگو تا برات چاره پیدا کنم بعدم دست و روی دختر رو نوازش کرد و بوسید دختر چون این مهربونی رو دید یکم دلش آروم شد و گفت ای جان دستم به دامنت برای من راه چاره پیدا کن وگرنه از بین میرم. دایه گفت زیاد فکر نکن. درد تو بگو بدونم که چیه. شاید براش چاره ای داشته باشم. دختر گفت میترسم رازم رو بگم و تو منو بین مردم رسوا کنی و به دست پدرم کشته بشم. اما اگه با من عهد کنی و قسم بخوری که راز من رو به اهدی نمیگی و دردم رو چاره میکنی میگم. دایه قسم خورد و دختر هم همونطوری که گریه میکرد و راز خودش رو برای دایه خاتون که همون عاشق شدنش بر جوونی بود فاش کرد. دایه تا اینو شنید عصبانی شد و گفت باری کلا عجب دختری تربیت کردم ای بی هیا تو کجا و این حرفا کجا هنوز از دهنت بوی شیر میاد دختر نگران شد و به دامن دایه آویخت و گریه کرد و گفت ای دایه جان تو با من عهد کردی که برام راه پیدا می کنی. دایه گفت ای نازنین توبه بکن که دیگه همچین حرفایی نزنی. اگه یک بار دیگه از این حرفا بزنی به پادشاه میگم. دختر دست اون رو گرفت و پیش خودش نشوند و صورتش رو بوسید و بعد هم گردن بند گران قیمتی بهش داد و گفت ای دایه. مگه تو خود تا حالا عاشق نشدی که منو سرزنش میکنی؟ و اونقدر گفت و گفت و گفت که دل دایه پیر به رحب اومد و گفت ای نازنین حق داری، حالا بگو بدونم عاشق کی شدی که اینطوری بیتاقتی میکنی؟ دختر گفت ای دایه، روز جمعه که بین بازار بودم، در کنار رستم خان جوون بلند بالا و خوش سیمایی رو دیدم و گرفتار عشق اون شدم دایه گفت ای نازن این نازنین حیف از تو نیست که بیشتر از هزار نفر شاهزاده و امیرزاده با لشکر و دولت به خواستگاریت اومدن را جواب دادی و همهم هم رفتن میان تلسم حمام بلور و برنگشتن حالا یه عاشق یه جوونی شده که حتی پدر مادرشم نمیشناسه؟ اگه صبر کنی شانزادگانه بیشمار بیشتری به خواستگار تو میانو دست از این جوون بردار که اگر پدرت بفهمه تو رو میکشه دختر همونطور گریه کنن گوه ای من این جوون رو دوست دارم تو منو سرزنش میکنی که عاشق شانزادگان باشم مگه اختیار دل به دست منه؟ دایه گفت نازنین تو در عشق اون جوونی ولی اون جوون که به خیال تو هم نیست دختر خندید و گفت شک ندارم که اون جوون هم عکس منو دیده و عاشقم شده برای همینم هست که میخواد به تلسیم حمام بلور بره و برادرما نجات بده دیشبم سیلی محکمی بر گوش قهرمان سالار زده و امشبم پدرم اونو در فلان خلوت حرمش مهمون کرده دایه که این صحبت رو شنید گفت ای نازنین اگه اینطوره یه آدم محرمی رو بفرست بره گوش وایسته و ببینه که با پادشاه چه صحبتی میکنند و این جوان چی چیزهایی میگه و بعد خبر بیاره تا من فکری در کار تو کنم دختر خوشحال شد و خاجه یاقوت رو مأمور کرد که این کارو بکنه. خاجه هم رفت و گوش ایستاد و شنید که پادشاه گفت ای فرزن تو رو قسم میدم که راستش رو بگی تو کی هستی؟ اهل کدوم ولایتی؟ و اونقدر در این حرف پافشاری کرد که ملک جمشید بی اختیار اشکش ربون شد و به یاد پدر و مادر پادشاه خودش افتاد و گفت قربانتان شوم اسمم ملک جمشیده و القصه تمام ماجرای خودش رو تعریف کرد که کیه و چه کار است؟ پادشاه فهمید که ملک جمشید شانهزادی اصیله و گفت ای فرزند هر کس که تاکنون برای نجات فرزند من رفته بر نگشته ازت میخوام که تو هم نری و اگه به خاطر عشق به دخترمه که من حاضرم همینطوری اون رو به عقد تو در بیارم بعد هم پادشاهیم رو به تو میدم و خودم تا آخر اوم به عبادت میپردازم چون که محبت تو در دل من خیلی شده و تو خودت مثل پسر من هستی و اگه بروی و بر نگردی مطمئن هم هستم که اینطوریه قم من دو برابر میشه اما ملک جمشید نپذیرفت و گفت من عهد کردم و باید که برم و ملک فریدون رو نجات بدم و هر چقدر هم که پادشاه اصرار کرد بیفایده بود پادشاه که دید اصرارش بیفایده است گفه ای فرزند حالا که این پس سه شب مهمون من باش روز چهارم هر جایی که میخوای برو ملک جمشید هم قبول کرد و بعد هم پادشاه از اون اتاق بیرون رفت و ملک جمشید هم در رخت خوابی که براش آماده کرده بودند خوابید. بله دوستان خواد یاقود که همه صحبتها رو شنیده بود به ماه عالمگیر گفت و عشق دختر به ملک جمشید صد برابر شد. و به دایه هم کل ماجرا رو همون شبانه گفت و خاطرش رو جمع کرد که اون مرد هم جوون شانهزاده است. دایه هم گفت باشه هر کاری از دست من بر بیاد کوتاهی نمی کنم و کمکت می کنم. دختر گفت آ جان میترسم که این جوان به تلسم بره و بر نگرده پس کمکم کن امشب مخفیانه به پشت در خلوت پادشاه برم و از پشت در ساعتی اونو ببینم تا یکم دلم آروم بشه دایه با اصرارهای زیاد دختر قبول کرد و اونو کمکش کرد و القصه دختر به پشت در رسید و از سوراخ در نگاه کرد و دید که اون عشق آتشینش خیلی آروم در رخت خواب خوابیده دیگه طاقت نیاورد برد و دست برد و در رو باز کرد و وارد و اتاق شد از صدای باز شدن در چشای ملک جمشید باز شد و چشمش به جمال دلارای ماه عالمگیر افتاد و از شدت عشق آتشینی که در دلش بود از هوش رفت دختر به بالای سرش رفت و بهش نگاه کرد و اونقدر دچار شور عشق شد که قطر عشقی از ششاش خارج شد و بر صورت شاهزاده افتاد و اون بهوش اومد و مثل سپند از جاش پرید و دختر رو دید و گفت ای نازنین من تو کجا و اینجا کجا؟ و القصه به صحبت و گفتگو مشغول شدند و اظهار عشق کردند زمان از دستشون در رفته بود که ناگهان دای خاتون وارد اتاق شد و گفت ای نازنین مگه از جونت سیر شدی الان که صبح بشه بلند شو بری بله اون دو دلدار از هم جدا شدند اما دختر گفت که امشب یه نامه از من به دستت میرسه و در اون زمان زود بلند بشو و بیا که چشمم به راحت خواهد بود دوستان و همراهان جان اینم پایان قسمت سوم اگه از این سبک داستانا لذت میبرید پس منتظر قسمت های جذاب بعدی اون باشید در پناه نور و عشق الهی باشید آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سحرآمیز سفر کنین جایی که پری ها و کوطول ها زندگی میکنن <متصفيق> کانال هزار افسان همونیه که دنبال <متصفيق> جایی که داستان های افسانه ای سر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری <متصفيق>